سلام به شنونده های کانال هزار افسان. داستانی رو بهتون تقدیم می کنم به نام مرد پین دوز امیدوارم تا آخر این داستان همراه من باشید یکی بود و یکی نبود روزی روزگاری اون طرف رود اون طرف کو پشت جنگل توی شهری دور مردی بود فقیر و کمروزی شغلش چی بود؟ پین دوزی یه روز مرد توی مغازه کوچیکش مشغول کار بود که پرنده کوچولویی بال زد و نزدیک اون نشست و بالاشو بست. پین دوز کفش و سوزن رو یه طرف گذاشت و بی سر و صدا چارزانو یواش یواش رفت به طرف اون. پرنده قدم قدم جلو رفت. پین دوزم دنبال اون خودشو جلو کشید. عاقبت به اون رسید و دستاشو به پاهای نازک پرنده چسبید. اما به جای اینکه که دوز پرنده رو بگیره، پرنده پینه دوز رو گرفت و با خودش تو آسمون بالا کشید و دیگه هیچ کس اونو ندید. زوه شد، غروب شد، شب شد، پینه دوز به خونه برنگشت، زنش از یه طرف، بچه ها هر کدام از طرف دیگه دنبال اون میگشتند. از این اون سراغشو گرفتن اما پین دوز پیدا نشد که نشد. ماها و سالا گذشت اما خبری نیومد، تا اینکه یه روز صدای در خونه بلند شد. کی بود؟ پین دوز. خوشحال و خندون با مال و ثروت فراوون، پینه دوز یه عالم سوقاتی هم و دل زن و بچه و فامیلو شاد کرد. چند روز گذشت، خستگی پینه دوز در رفت و نشست به صحبت و تعریف کردند. یه روز تو مغازه مشغول کار بودم که پرنده کوچولویی بال و پرزنان اومد و کنارم نشست. خیلی قشنگ بود، دلم خواست اونو بگیرم، خم شدم و روی زمین دست و پا افتادم. بلاخره پاهای نازکشو گرفتم اما پرنده به هوا پرید و منو دنبال خودش تو آسمونا کشید رفت و رفت و رفت تا بالای جزیره ای رسید آروم آروم پایین رفت و منو توی جزیره گذاشت به دور نگاه کردم همه جا پر از مروارید غلطون بود راه افتادم و جیبامو پر از مروارید کردم یه عالمه از اونارو برداشتم منتظر نشستم تا ببینم چه اتفاقی میافته چیزی نگزش که پرنده برگشت و منو به یه شهری بود شهری اونور دریا، بزرگ و شلوغ و زیبا. مرواریدا رو فروختم و با پولش مشغول کسب و کار شدم. ثروتمند و مالار شدم. مال و ثروتمو برداشتم و شهر به شهر اومدم تا به شهر خودم رسیدم. فامیله دوز قصه رو شنیدن و ثروت اونو دیدن و همه چیز رو باور کردند. اون وقت گفتن اگه پرنده بازم به دیدن تو اومد ما رو خبر کن با خودت هم سفر کن اینطوری ما هم به نونو نوایی میرسیم و مثل تو من میشیم پین دوز قبول کرد فامیل پین دوز هر روز توی مغازه اون منتظر میشستن من آقه بعد یه روز پرنده کوچولو برگشت آوازی خوند و روی زمین نشست و بالاشو بست. پین دوز و به پاهای پرنده چسبیدن. پرنده پرکشید پر کشید و به آسمون رفت. بالو پر زد و رفت, و رفت و رفت و رفت تا روی دریا رسید. یکی از آدمای فامیل از پین دوز پرسید. راستی توی جزیره خوردنیم هم پیدا میشه؟ بدون غذا و آب حلاک میشیم. همه میمیریم. پینه جواب داد دل واپس نباش. اونجا میواهای جور با جوری داره از درخت سیب و گیلاس و انار میباره خربازه و هندونه های درشت چه هندونه به این بزرگی پینه دوز دستاشو از هم باز کرد تا اندازه هندونه ها رو نشون بده که بین زمین و آسمون رها شد بیچاره پینه دوز خدا میدونه کجا افتاد فقط میدونیم